چه های خوشمزه ای نوش جان امروز آقای احمدی اینجا بود آقای احمدی کیست حسین احمدی تولید کننده و صادر کننده های خشک است او از دوستان قدیمی ماست چه شغل جالبی صادرات های خشک چگونه این میوه‌های خشک تهیه می‌شود او میوه‌های مختلف را از کشاورزان می‌خرد و شریکش آقای علوی میوه‌ها را در کارخانه اش خشک می‌کند و آقای احمدی میوه‌های خشک شده را به کشورهای دیگر صادر می‌کند البته آنها کارخانه بزرگی ندارند ولی با کمک کشاورزان محصولات خوبی را تولید می کنند. محصولاتشان متنوع است. انجیر، سیب، گلابی، خورمالو، گیلاس، پرتقال. درست است. آنها از شهرهای اردبیل، مشهد، اصفهان و ورامین میوه می خرند. حالا این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ به کشورهای عربی هاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی به نظر من آنها باید کارشان را توسعه بدهند مطمئنا مردم همه کشورها از این میوه خوششان میآید